خاموشی چرمساز روزهای بسیار گذشت تا آلوریک از یک نواختی سخرها دریافت که هر روز سفرش همچون روز دیگر است و هر چه سفر کند هیچ دگرگونی در افقهای دنداندار همچون افقهای پیش از خود رخ نخواهد داد و هرگز کوهای آبی روشن را نخواهد دید ده روز تمام بر صخره ها سفر کرده بود و در همین حال توشه ی راهش سبک و سبکتر میشد. شد اکنون غروب بود و آلوریک دریافت که اگر بیشتر پیش برود و نتواند چکادهای کوههای سرزمین پریان را ببیند از گروسنگی خواهد مرد بنابراین از امیدی که او را به پیش میراند دست کشید شامش را در تاریکی خورد چون هیزمش مدتها بود تمام شده بود و روز بعد به محض پیدا شدن اندک نوری در شرق کمی از آنچه که از شامش کنار گذاشته بود خورد و سفر درازش را بر روی سخرها به سوی دشتهای انسانها آغاز کرد پیمودن سخرهها دشوارتر شده بود چرا که پشتش به سرزمین پریان بود تمام آن روز تنها اندکی خورد و نوشید و با فرارسیدن شب هنوز توشه ای برای چهار روز داشت. پیش از آغاز سفر گمان کرده بود که اگر ناچار به بازگشت شود، از آنجا که بارش سبکتر می شود، سفر خواهد کرد. هیچ به نیروی آن سخرهای یک نواخت در فرسودن و افسردن او با تنهاییشان، هنگام از بین رفتن امیدی که چهره شومشان را آشکارتر می کرد، نه بود. تا دهمین غروب که هیچ کوه آبی روشنی ندید به بازگشت کمتر اندیشیده بود و ناگهان به توشه راهش نگاه کرده بود و تمام یک نواختی سفرش به سوی خانه تنها گاهی با این حراس شکسته میشد که مبادا به دشتهایی که میشناسیم نرسد هزاران سخره بزرگتر و زخیمتر از سنگ گور. و نه تراشیده با چنان دقتی گسترده شده بودند و اما باز آنهامون منظره گورستانی را داشت که با سنگهای بیاد داشت بر جسدهای بینام سر تا سر جهان را پوشانده بود لرزان از شبهای تلخ رهنمون با غروبهای درخشان در میان صبحهای مهالود و نیم روزهای خالی و غروبهای فرسوده کننده و بیپرنده به پیش می‌رفت. بیشتر از یک هفته از زمانی که راه بازگشت را پیش گرفت گذشت و آخرین قطره آبش تمام شد. و هنوز هیچ نشانی از دشت هایی که میشناسیم یا چیزی آشناتر از آن سخره ها نمیدید. سخره هایی که اگر خورشید سرخ نوامبر و گاهی ستاره آشنا نبود میتوانستند او را به اشتباه به شمال یا جنوب یا شرق راهنمایی کنند. و سرانجام درست هنگامی که تاریکی گسترد و آن بیشمار سخره ها را سیاه کرد بر فراز سخره ها در سمت غرب پنجرهی در زیر یکی از شیروانهای انسانی خود را نمایاند که نخست در میان بازمانده ی نور غرب زرد بود و سپس اندک اندک به نارنجی گرایید. از جا برخاست و تا وقتی که تیرگی و فرسودگی سخره ها بر او غلبه کرد به سوی پنجره پیش رفت و بعد دراز کشید و خوابید و پنجره ی زرد کوچک به درون رویاهایش درخشید و برایش نگاره هایی از امید ساخت. نگاره هایی به دلپذیری همان نگاره هایی که از سرزمین پریان میآمد. صبح روز بعد که از خواب بیدار شد خانه ای دید. نمی توانست باور کند که این همان خانه است که شب پیش سوسوی ضعیفش برای تنهاییش امید و یاری فرستاده بود. اکنون خانه ای بسیار ساده و معمولی می نمود، آن را شناخت خانه ای نه چندان دور از خانه چرم ساز بود کمی بعد به برکهی رسید و آب نوشید به باغی آمد که زنی زود هنگام در آن کار می کرد و زن از او پرسید که از کجا می آید. گفت: از شرق و به شرق اشاره کرد اما زن نفهمید و بنابراین آلوریک به کلبه ای رفت که سفرش را از آن آغاز کرده بود تا یک بار دیگر از مرد پیری که دو بار به او پناه داده بود تقاضای میهمان نوازی کند. هنگامی که آلوریک فرسوده رسید مرد پیر در درگاه خانه ایستاده بود و یک بار دیگر به او خوش آمد گفت به آلوریک شیر و سپس غذا داد و آلوریک غذا خورد و سپس تمام روز استراحت کرد تا هنگام غروب صحبت نکرد. اما پس از اینکه غذا خورد و استراحت کرد و بار دیگر بر سر میز نشست و شامش در جلویش بود و نور و گرما وجود داشت ناگهان احساس کرد به همصحبتی با انسانی نیاز دارد و سپس داستان آن سفر بزرگ را در سرزمینی که حضور انسان در آن متوقف میشد و هیچ پرنده یا جانور کوچکی یا حتی گلی به آنجا نیامده بود داستان سفر در سرزمینی را که سرگذشت تنهایی بود بیرون ریخت و مرد پیر به آن واژه زنده گوش داد و هیچ نگفت. و تنها هنگامی که آلوریک از دشتهایی که می سخن میگفت نظری میداد. معدبانه گوش داد اما کلامی درباره هامون خالی شده از سرزمین پریان نگفت. گویی سرزمینی که در شرق قرار داشت به تمامی یک توهم بود، و انگار آلوریک از این توهم نجات یافته یا از خواب بیدار شده بود و اکنون در میان چیزهای منطقی روزمره بود و چیزی برای گفتن درباره این رؤیا وجود نداشت. مرد پیر هرگز چیزی نمی گفت که نشانه ی شناختن سرزمین پریان یا هر چیزی که هشتاد گام دورتر از در گلبهش بود باشد. سپس آلوریک به بستر رفت و مرد پیر تا هنگامی که آتشش فروخفت تنها نشست و به آنچه شنیده بود اندیشید و سرش را تکان داد و آلوریک تمام روز بعد در آنجا استراحت کرد یا در باغ پاییزی مرد پیر قدم زد و گاهی دوباره کوشید درباره سفر بزرگش در آن سرزمین متروک با مرد پیر صحبت کند اما از او هیچ تاییدی مبنی بر وجود این سرزمینها ها نگرفت مرد پیر همواره از این موضوع پرهیز می کرد، گویی اگر درباره آنها سخن می گفت، نزدیکتر می شدند. و آلوریک دلایل بسیاری برای این امر تصور می کرد. شاید مرد پیر در جوانی در سرزمین پریان بوده و چیزی دیده بود که به شدت ترسانده بودش. شاید از مرگ یا از عشقی که هنسال می گریخت. شاید سرزمین پریان راضی بزرگتر از آن بود که با صداهای انسانی آزرده شود. شاید این مردمی که در اینجا بر لبه دنیای ما میزیستند، زیبایی غیرزمینی شکوه سرزمین پریان را می شناختند و حتی از صحبت کردن درباره آن می ترسیدند تا مباد آنها را به درون خود فرا خوانند و نگاه دارند. یا شاید واژه که درباره آن سرزمین جادویی گفته میشد، آن را نزدیکتر می آورد تا دشت که می شناسیم را خیالی و پریانه کند هیچ پاسخی به تمامی این پندارهای آلوریک وجود نداشت و اما آلوریک یک روز دیگر هم استراحت کرد و سپس تصمیم گرفت به ارل بازگردد بامداد روز بعد راه افتاد و میزبانش تا بیرون در بدرقش کرد و سفر به خیر گفت و از سفرش به خانه و کاربار ارل سخن گفت که غیبت و شایع پراکنی در کشتارهای بسیاری را تغذیه میکرد. و مرد پیر که وجود آن سرزمین های دیگر را که هنوز امیدهای آلوریک به آنها معطوف بود تایید نمی کرد. به سادگی وجود دشت که میشناسیم را که آلوریک اکنون به سوی آنها سفر می کرد تعیید می کرد. این تزادی شگرف بود و از هم جدا شدند و از صدای بدرود مرد پیر کاسته شد و سپس به درون خانهش بازگشت و در حالی که آهسته وارد خانه میشد با خوشنودی دستهایش را به هم میمالید چون از دیدن این که کسی به سوی سرزمینهای خیالی نظر کرده بود اکنون در دشتهایی که میشناسیم در سفر است خوشنود بود شب نمهای یخزده دشتها را فرا گرفته بودند و آلبریک در میان سبزهای خاکستری موجدار گام بر می داشت. و هوای تمیز و تازه را فرو میداد و کمتر به خانه یا پسرش میاندیشید، حتی اکنون هم به این میاندیشید که چگونه میتواند به سرزمین پریان برود، چون میپنداشت ممکن است در سمت شمال راهی وجود داشته باشد که به پشت کوههای آبی روشن برسد. ناامیدانه مطمئن بود که سرزمین پریان دورتر از آن رفته است که بتواند به آن دست یابد. اما به سختی باور می کرد که سراسر مرز شفق به اندازه شعر شاعران دور شده باشد. در شمال می توانست مرز را تکان نخورده و خواب آلوده و گسترده با شفق بیابد و به زیر کوهای آبی روشن برود و همسرش را دوباره ببیند. سرشار از این اندیشه ها دشت های محالود و نرم را می پیمود. و یک روز بعد از ظهر سرشار از این رؤیاها و برنامهها درباره آن سرزمین خیالی به جنگل‌هایی رسید که بر فراز دره ار رویده بودند وارد جنگل شد و کمی بعد هر چند غرق در اندیشه‌های دورش بود دود خاکستری آتشی را در همان نزدیکی دید که در میان تنه‌های تیره بلوط بالا می‌رفت به سوی آن رفت تا ببیند چه کسی آنجاست و در آنجا پسرش و زیروندریل در کنار آتش نشسته بودند و دستهاشان را گرم میکردند. اوریون تا او را دید گفت، تو کجا بودی؟ آلوریک گفت، به سفر رفته بودم. اوریان گفت، اوت داره شکار میکنه؟ و به سوی اشاره کرد که باد دود را با خود میبرد. و زیروندریل هیچ چیز نگفت چون در چشمای آلوریک بیشتر از آنی دید که هر پرسشش می توانست از زبان او بیرون بکشد. سپس اوریون یک بوست گوزن را که بران نشسته بود به او نشان داد و گفت او چه کارش کرده؟ چون این مینه مود که در ردای برکنده پاییزی جنگل که درخشان در همه جا گسترده بود جادویی پیرامون آن آتش را که آهسته از هیزمهای بزرگ برمیخواست فرا گرفته بود و آن جادوی سرزمین پریان نبود. زیر هم با اصایش آن را فرا نخوانده بود. تنها جادوی خود جنگل بود. والوریک مدتی در سکوت، پسرش و جادوگر را کنار آن آتش تماشا کرد و دریافت یافتنگام آن فرا رسیده، که مسائلی را به اوریون بگوید که حتی برای خودش هم روشن نبودند و حتی خودش را هم سردرگم می کردند. اما آن هنگام از آنها سخن نگفت تنها چیزی درباره باره کاروبار ایرل گفت برگشت و به سوی قلعه اش براه افتاد و در تمام این مدت به واجه اندیشید که باید می گفت. شامگاهان به کودکستان رفت و به پسرک گفت که مادرش چگونه برای مدتی به سرزمین پریان و قصر پدرش که تنها در ترانه ها می توان از آن گفت رفته است و سپس بدون توجه به هیچ کدام از واجه های اوریون به گفتن داستان کوتاهی که برای گفتن آن آمده بود پرداخت و گفت سرزمین پریان چگونه رفته بوده است اوریون گفت اما نمی تونه اینطوری باشه چون من هر روز صدای شیپورهای سرزمین پریانو میشنوم آلوریک گفت می توانی صدایشان را بشنوی؟ و پسرک پاسخ داد: من صدای نواخته شدنشان را به هنگام غروب می‌شنوم. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی